سمعتو من شنیدم از وجود مقدس امام عزکوی غیر مرتن نه یک بار دو بار یکل مقلمانهو به لغاته ترکن و رومن و سقالبتن من دیدم به کسانی که اطراف حضرت بودن خدمتکاران قیره من مکرر دیدم که حضرت با هر کسی با زبان خود او صحبت میکند دیدم به رومی رومی میگوید به فارسی فارسی میگوید به ترکی ترکی صحبت میکند ما فتحجبت تو من زادج من تحجبم زد و قول گفتم چکه اون که آزام ولده به مدینه یا فرزند مدینه هست این عرض به فتمتون چطور میشه که این حالت رو دارد او حد دست و نفسی به زالج با خودم حدیث نفس میکردم یه روز که دیدم حضرت با زبان دیگری داره صحبت میکنه فقال فاقبل علیه عمری تو دل من مطلبو تجدد رو من کردن فقال ان الله تبارك وتعالى بينه حجته من سائر خلقه بكل شيء خداوند حجت را روشن میکند دل حجت را روشن میکند در میان خلق و آن چه نیاز دارد و برای هر چیزی که در شأن اوست و يعطي اللقات من جمله به او علم لقات میدهد معرفت الانساب معرفت نسبت و الاجال و الحوادث شناخت به ها و ها و ها و عمرها را میدهد ولو لازالک لم یکن بین الحجه و محجوج فرقون اگر این نبود که بین حجه تو بین امام و معموم چه فرق است مگر این میشد حالا این آجالش شو بسید این رو بگم که اینم باشه نوشتم نامه رو از همون نامه ها به امام عزگری اصالهو ان یدعوب الله لی من رجع اینی خواستم که آقا دعا کند برای مشکلی که در چشم من پیش آمده است نهکانت احدا عینی ظافبه یکی از چشم ها رفته بود و دیگری هم در شرف زهاب بود و در حال رفتن بود میترسیدم این بینایی من بره فکت به ععلیه در جواب برام هم که ح الله عل که خداوند چشمت رو بر تو نگه دارد و نگاه میدارد و همین شد افاقت خوب شد اون چشم که در حال رفتن بود خوب شد و صحت اون باقی ماند بعد دیدم آخر نامم یه چیزی آقا نمشته بودن و وقع فی آخر الکتاب یه چیزی اون پایینش نفت بسن آجرک و احسن سوابت خدا بهت عجر بده سوابت را زیاد کنه من چی نفهمیدم که این آخر ناممم چیل نوشته بودن برای من فقت تمام تو بزالک این ام اومد تو دلم ولم اعرفی احبی احدا مات این جمله رو در مرگ کسی میگه من نه کسی از این فوت کرده بود نه هیچی امام با میگن آجار کلا خدا ون عجد بده انشاءالله این مصیبت و این چیست فلما کانه بعد ایام چند روز بیش نگذشت جاعتنی وفات و ابنی طیب پسری داشتم به نام طیب جان داد عزیز من رفت فعلم تو انت تعذیه تله دانستم که امام وجود مقدس هسته از قبل از فوت فرزندم، تعزیه و تسلیت اون رو به من اعلام کردند.